چهل گیسو، این داستان از بانو فاطم قیمتی از کرمانشاه نقل شده روزی روزگاری در سرزمینی دور پادشاهی با تنها پسرش زندگی می کرد. پادشاه برای خودش قصر باشکوهی داشت با چهل تا اتاق اتاقای قصر یکی از یکی زیباتر و بزرگتر بود اما در اتاق چهلم همیشه بسته بود و کسی حتی پسرش حق وارد شدن به اون رو نداشت. پسر پادشاه کم کم بزرگ شد و کنجکاف برای دیدن اون اتاق. اما همچنان هم اجازه ورود به اون اتاق رو نداشت. تا روزی از روزها که پادشاه تصمیم گرفت برای شکار به صح را بره دستور داد اسبش رو زین کنن و، مقدمات سفر رو مهیا کنن پسر که فرصت را غنیمت شمرد با هر هیله و نیرنگی که بود دل کلید داره اتاق چهل رو به دست آورد و وارد اتاق شد تابلوی اونجا بود که چشمای پسر را خیره کرد تابلو تصویری از دختری بسیار زیبا بود دختری با چهل گیسوی بافته شده پسر با دیدن تابلو تصمیم گرفت سفرش رو آغاز کنه و تا وقتی که اون دختر رو پیدا نکرده به قصر بر نگرده. اون دستور داد اسبی رو براش زین کنن. همه معمورا و درباریا التماس کردن که از خیر این سفر بگذره. روی پاهاش افتادن اما انگار فایده ای نداشت. پسر ازمش رو جزب کرده بود و راهی سفر شد. مدتی رفت و رفت تا کنار رودی رسید پیاده شد کمی آب به سر و صورتش بزنه پیرزنی رو دید پیرزن از اون پرسید کجا میری پسر پادشا گفت میرم دختر چلگیسو رو پیدا کنم به یکباره باره چهره پیرزن هفت رنگ شد پسر با تحجب اونو نگاه کرد و پرسید چی شد یه دفعه چرا چهره اینطور شد گفت من هفت پسر داشتم، هر کدوم برای پیدا کردن اون به کوهی که این دختر اسیر دیو بزرگ و خطرناک بود رفتن ولی هیچ کدوم بر نگشتن. آخه هر بافته موی این دختر که تو چنگال دیو اسیره با میخ به زمین کوبیده شده تنها راه نجات اون هم بیرون آوردن این میخواست پسر پادشاه گفت به خدا توکل میکنم و به دنبالش میرم هرچه باداباد پسر خداحافظی کرد و رفت مسافت زیادی رو رفت تا به پیره رسید پیرمرد پرسید ای پسر کجا میری؟ پسر گفت برای نجات دختر گیسو به کوهی میرم که تو اون اسیره پیره گفت پسر جان سالهای سال رو پشت سر گذاشتم اما هیچ کس تو جنگ با دیو موفق نشده از من گفتن تا دیر نشده این راه و برگرد و دست از این کار بردار پسر گفت من تصمیمم رو گرفتم تمام سعیم رو میکنم تا اون دختر رو نجات بدم و دیو رو شکست بدم پیرمرد گفت پس یادت باشه دیو بعد از ظهرا به خواب میره اما گاوای زیادی اون اطراف در حال چرا هستند هر کدوم به گردن دارن. گاوا با دیدن انسان شروع به حرکت میکنن. وقتی زنگوله ها به صدا در میان، دیو بیدار میشه. باید خیلی مواظب باشی. پسر مسمم تر از قبل، راه رو در پیش گرفت و خودش رو به آرومی به کنار گاوا رسوند. با گذاشتن پنبه توی هر کدام از زنگوله ها صدای زنگوله ها را قطع کرد چند روز طول کشید که دیو به خواب رفت پسر پادشاه مشغول بیرون آوردن می شد. اونقدر تلاش کرد تا بالاخره موفق به نجات دختر شد رو سوار اسبش کرد و راهی قصر شد پیرمرد و پیرزن که توی راه اونو دیده بودن بهش آفرین گفتن و از اینکه دختر رو از چنگال دیو نجات داده خوشحال شدن وقتی اونا به قصر رسیدن پدر با ناباوری پسرش رو به آغوش کشید و اونو تحسین کرد و جشن عروسی مفصلی برای اون دو برپا کرد جشنی که هفت شبانه روز طول کشید دوستای عزیز همین بود قصه ما. براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.